بله حاج از طریق خطوت تلفن در خدمت یک خوشاوش مشکل گشاوی برنامه یعنی برادر مشکل گشا از بچه های ناف وزارت هستیم تا مشکلات ما را گشاوی نمابند بله برادر مشکل گشا صدای من داری بله بنده هم با سلام به موه طیبه بله. امام امت و آرزوی طلب عمر برای مقام معظم رهبری در خدمت شما هستم دید. یا علی پیغام پسخامی چیزی برای کسی گی نداری خجالت نکش بگو ما فور موند خدمت شما هستم. خب بل... به مشکل جان بگو ببینیم از فضای تبلیغات انتخاباتی چه خبر؟ خب ما مونتور کام مستحضر هستید چند روز از شروع شده تبلیغات بمردان و خواهران کاندیدا در یک فضای شولم و کاملا دوستانه در حال تبلیغ ایده ها و تفکرات و خودشان هستند پس خیلی سالم فرزا دیگه بله. بس چی میگن این گزارش ها که بعضی از کاندیداها ها مثلا توی ایک از شهرهای جنوب آزروازیان غربی بله بله. بین طرفداراشون برنج هندی و تبلت های چینی و اینا توضیح کردن این چی؟ البته بنده این گزارش ها رو دریافت کردم خ... و باید اصلاح بکنم چه که شما فرمودید چون برنج که توزیع شده بود برنج زعفرانی هندی دانه بلند مجزه بوده که آه. شما فرمودید فقط هندی که خوب این دقیق نبود دید. یعنی الان مشکل ما اینه که برنجش دانه بلند بوده یا دانه کوتاه مشی من میگم ببینید اطلاعاتی که از راه داده میشه باید دقیق باشن اینا دیگه بابا جون میگم خوب این کاره یه رای خریدن دیگه درست است که اینه. همون طور که میگم مقام محمد رهبری فرمود باش داشته باشه مادر داره با آخه با برینجو تبلت بله بله. مشکل تازه من یه گزارشی دیگه خوندم بله. توی یه نقطه دیگه بله بله. به یه نامزدی رو میبره تالار بله. عروسی بهش شام میده شام و عروسی مفصل تر این چجوری؟ بله جوری بالاخره حواداران اون نامزد مورد نظر درست میشن و متوجه فضای پرشور انتخاباتی باید اونو آخه نماینده که با دیس برنج رای بگیری از مردم دیگه پس ورده که میره تو مجلس با دیس برنج قانون تصویب میکنه دیگه, دیگه آخه نمیشه این تو... از قدم سفارش شد که بخوره و بیا شهمد اما اسراف نکنه اینو عزیزون اصلا به نظر داشته باشه ما هرچی بین مشکل میگیم که... نره این میگه ماده است بله تازه خبر چیز تو مازندران تو بعضی از مجالس ده. عروسی خانم های کاندیدا ها میرن تو زنونه برای آقاشون هم تبلیغ بله, بله. خب این یکی از نشانه های بلوغ جامعه مایه که سعی میشه در از ظرفیت مجالس عروسی هم برای انتخابات استفاده بشه که بین ازیزان مشکل میگم تو چیزی در امروز من هر چی میگم تو یه نمویل شیرین میای روش دیگه اه. نه دیگه خب فضای آه. انتخاباتیه دیگه اگه اجازه بدید بنده الان در مجلس تبلیغات هستم الان باید برم تا سخن بکنم مشکل بیخیال تو مامور دولتی نمیتونی این کارو بکنی میگم تو مامور امنیتی هستی نمیتونی برای کسی تبلیغ کنی الو شما رو ندارم من الو بی میری ای بن شما اینا سنتیش الو بابت تشکرت توجه شما و مشکلی خدا رو